اگر بخواد اون اهداف پنجگانه، صحیح خانی، رواندخانی، درک مطلب، توان تزیب و ترکیب و درک زرائف و لطائف لفظی و معنوی کلام عرب اون اهداف حاصل بشه، انسان میتونه از این راهکارها استفاده بکنه و از این مسیر به اون اهداف برسه. خب فرض اینه که ما داریم کتاب های معمول حوزوی رو میخونیم مثلا سال اول توی نف بدایه خونده میشه بعد یا هدایه و خونده میشه بعد سویوتی خونده میشه بعد باقنه خونده میشه کتاب های صرف هم حالا یا دانش صرف یا صرف ساده یا آموزش صرف که از این کتاب ها خونده میشه به نظر میرسه که این کتاب ها میتونه جوابگو باشه برای اون اهدافی که ما دنبالش هستیم انتها در کنار خوندن این کتاب ها، این امور رو هم انسان دنبال بکنه اولین امری که باید دنبال بشه تعدد شاهده یعنی پیدا کردن شواهد متعدد برای هر بحثی که ما توی صرف نه یا بلاغت میخونیم فرقی نمیکنه. اون عزیزی که الان مخاطب ماست پایه اول که تازه داره شروع میکنه این مسیر رو به همین صورتی که ارز میکنم دنبال بکنه یا اون عزیزانی که احساس میکنن ادبیاتشون ضعیفه، و برگردن و مرور بکنن اونها هم این مسیر رو میتونن تیم بکنن برای این منظور یک حجمی از قرآن رو یک حجمی مثلا 5 شیش صفحه ای در حد سوره مبارک یاسین مثلا. این حجم رو انتخاب میکنیم. بعد از صرف شروع میکنیم. باعث صرفی رو هر بحثی رو که خوندیم این پنجش صرفه رو یک بار به قصد پیدا کردن شاهد برای اون بحث مرور میکنیم. مثلا بحث فعل سلاسی مجرد سالم رو خوندیم. الان، میایم در این پنج شیش صفحه مثلا در سوره مبارک یاسین فعلهای سلاسی مجرد سالم رو پیدا می کنی. خب حالا ممکنه به شکل مازی باشه ممکنه مزارع باشه ممکنه امر باشه هر کدوم که هست ما بقیه سیقه رو هم خودمون پیدا می کنیم یکر ماضیه، مزارع، عمر، و معناش رو پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم که چیه اگه امره باز ماضی، مزاره، مستر و معنا بگونه این که وقتی فعل سلاث مجرد سالم بحثش تمام شد دیگه ما فعل سلاث مجرد سالم میتونیم سوره مبارکه نداشته باشیم که نشناسیم این فعل رو بعد فعل های معتل مطرح میشن به همین صورت یک بار برست دیدن فعل هایی که مثال هم یا نه یا اجوفن یا ناقص هم. یا بعد لفیف هم. بعد میرسیم باب های سلاسی مزید باب افعال باب کفیل اینها هم تک تک هر چی که خوندین مرور میکنیم چاید این پنج شیش صفحه فعلی از این باب هست یا نه مازیش چیه مزارعش مسترش و معناش اینکه که پنج -شیش صفحه رو گفتیم انتخاب بکنیم به خاطر اینکه مباحث اصلی معمولا تو پنج شیش صفحه یک مثال رو داره. بعضی از مباحث هست که تا آخر قرآن هم برید اصلا یک مثال مسلم نداره. مثل بحث مقتدائی وصلی مثلا. کل قرآن رو که بگردید یک مثالی که بگید این فقط به صورت مبتده وصفی ترکیب میشه و ترکیب دیگری نداره ما یک مثال همینجوری پیدا نمی کنیم. یا یک مثلا کلماتی مثل لاسی یما رو کل قرآن رو هم که بگردید پیدا نمی کنیم. ولی مواحثی مثل همین فلای سلاسی مجرد فلای سلاسی مزید بعد مثلا حال تمیز مفعول و مختلف اینا چرا پیدا میشه شما مباعث سرفی را همینجور جور دنبال میکنید بگونه ای که بحث فعل که تمام شد یه هیچ فعل مبهمی توی این پنج صفحه نباشه همه فعل ها بلا تشبیح مثل جدولی که چراخاش روشن میشه اینها ها روشن شده باشه و معلوم باشه برای شما بعد وارد بحث اسم که شدید اسم فاعل رو خوندید اسم فاعل ها رو پیدا کنید اسم مفعول باز اسم مفعول ها رو صفت های اسم تفضیل ها رو بگونه این که بحث اسم که تمام شد تو صرف شما هیچ اسم مبهمی در این پنج صفحه نداشته باشید که این اسم رو نشناسید و معناش رو ندونید بقیه هم که میشن حروف بعد میاد تو بحث نه توی بحث نه مثلا از مرفوعات اونجا شروع کردید فرض بکنید بس فائل رو خوندید. همه فائل های این پندسخفه رو این سوره مبارک رو پیدا می کنید. ها با شکل های مختلفی که داره. فائلی که اسم ظاهره. فائلی که زمیر بارزه. زمیر مستطره. فائلی که بین او و فعلش فاصله افتاده. اشکال مختلف فائل رو هم مشاهده می کنید. بعد بس مبتدا و خبر رو خوندید. توی مرفوعات این سوره مبارک سوره یاسین مثلا مبتدا و خبرهاش رو پیدا می کنید خب اینا که تو پیشانیشون ننوشته که من مبتدا هستم یا خبر شما باید اون مباحث مبتدا و خبر رو دقت کرده باشید درش تا بعد بتونید الان مبتداها رو تشخیص بدید خبرها رو تشخیص بدید و این خودش تسلط ایجاد میکنه. بعد مجموعه مبتدا خبرها رو با اشکال مختلفی که داره، خبری که مفرده، خبری که جمعه است، خبری که شبه جمعه است، خبری که جامده، خبری که مشتقه، اینها خود به خود اقسامش خودش رو بهتون توی این مرور نشون میده. و همینجور مرفوعات رو تا آخر میرید به گونه که بس مرفوعات که تمام شد دیگه هیچ مرفوع مبهمی در این پنصفه نباشه بعد میرید سراغ منصوبات منصوبات رو باز بس حال رو یک بار به قصدش این سره مبارک رو مرور میکنید و خود به خود ممکنه با انواع حال مواجه بشید حالی که ظلحالش حالی که مفرد، حالی که جمله است حالی که شرف جمله است حالی که احیاناً برزول حالش مقدم شده وقتی بحث حال رو خونده باشید بعد اشکال مختلف حال رو هم اینجا میتونید پیدا بکنید و بعد تو این پنشیش سبه اینجور نیست که هیچ مثالی نباشه از کردم یه بحثی مثل حال بحث مهم نیست این رو حداقل شما با چند مثال در این پنج صفحه مواجه میشید <تصفيق> یا حداقل با یک مثال مواجه میشید بعد بحث تمیز رو بحث اقسام پنجگانه مفاعیل رو بعد با اشکالی که داره مثلا مفعول بعد مفول مطلق تأکیدی عددی نوعی به گونه که بحث منصوبات وقتی تمام شد تو نفر شما هیچ منصوب مبهمی در این صفحه نداشته باشید و بعد هم مجرورات اون رو اونها رو هم به همین کیفیت مرور می کنید این میشه یک نفر تجزیه و ترکیب موضوعی یعنی یک موضوع رو شما در نظر گرفتید شواهد متعدد اون موضوع رو پیدا کردید و این باعث میشه که اون بحث در ذهنتون به خوبی تصویر بشه و شما منحصر در یک مثال نباشید و بعد ظرفیت ها رو بشناسید شنافت ظرفیت ها که این رو توی قسمت بعد انشاالله بیشتر توضیح حرف خواهم تو بحث بلاغت هم که وارد شدید اون هایی که مثلا پای سوم رو گذرددن و این مباحث رو الان میخوان مرور بکنن اونها هم وارد میشن توی این مباحث بعد مجموعه معارف رو که توی نفس شناختن الان میبینن که در این سوره مبارک اینجا موصول استفاده شده اونجا اسم استفاده شده اونجا علم استفاده شده بعد توی بلاغت خوندن که علم در چه فضاهایی به کار میره کی ما از یک کسی که میخوایم یاد بکنیم اسمش رو میاریم کی او رو به صورت موصول مشخصش می کنیم کی با اسم اشاره بهش اشاره می کنیم کی با زمیر از او یاد می کنیم کی با الف و لام ازش یاد می کنیم خب این دیگه رسالت بلاغت دیگه شما الان اگر یه کسی کنارتون باشه میتونید به او بگید و شغل میتونید بگید حاضا، میتونید بگید انتا، میتونید بگید الگی جلسه, جلسه هنا. تعبیرات مختلف میتونید به کار ببرید. اما میتونم اسمش رو بگید. بگید حسین مثلا. حوکی کدام یک از این معارف رو به کار میبرید؟ این رو بلاغت مشخص میکنه، معانی مشخص میکنه. بعد شما نگاه میکنید توی این پنی صفحه کجا اسم اشاره استفاده شده کجا ضمیر کجا موصول و بعد دقت کنید که کدوم یک از اون فلسفه‌هایی که برای بکارگیری اینها گفته شده در این مورد خاص قابل تطبیق این میشه اولین راه برای تسلط بر ادبیات دومین راه خلق مثاله مثال سازی یعنی مباحثی رو که ما خوندیم تو ادبیات اگر خوب فهمیده باشیم باید بتونیم برش خودمون مثال بسازیم در مواحث صرفی اگر ما سیغه ها رو به خوبی شناخته باشیم بعد باید بتونیم برای سیغه ها مثال بسازیم مصدر رو به ما بگند بعد اون سیغه خاص رو طلب بکنند و ما اون سیغه رو بیان بکنیم مثلا وقتی فعل ماضی رو کامل چهار دستیقش رو یاد گرفتیم یه موقع شروع میکنیم صرف کردن و خب، یک کاری اما یه موقع تک تک موارد رو به صورت خاص میخوایم برش مثال بسازیم مثلا میگیم برای مفرد مذکر مخاطب از مستر نصر چی باید گفت؟ بلافاصل طرف یه فکری می کنم می گه تر برای سیغی نهمش چه باید گفت؟ بسن نصر نه <تصفح> متکلم وحدش به چه صورت خواهد بود؟ نصر تو فعل تصنی مغایبش چه خواهد بود؟ طرف میگه خب مزکر یا مؤنس. میگه مثلا مؤنس. میگه نصرت تا. همینجور ما مستر رو میگیم و اون سیقه خاص رو طلب میکنیم. یا شخص خودش رو مستر فکر میکنه. مستر رو تو ذهنش میاره. بعد رو سیقه مختلفش های میتونه بسازه یا نه. یا از اون طرف فارسیش رو میگیم و عربیش رو طلب میکنیم. میگیم مثلا بگو یاری کردم نصرت تو یاری کردی تا که گفتیم یاری کردی طرف اگر حواسش باشه میگه مزکر یا مهند نست مثلا مهند نست میگه و به همین صورت ساختن سیقه های مختلف تو سر فعل مزارش رو هم به همین صورت بعد ساختارهای مختلف فعل جهدش رو، فعل نفیش رو، فعل استفهامش رو اینا رو طرف هر که خودش مثال سازی بکنه تسلطش بالا میره. بعد میاد تو مباحث نحوی، بحث فائل رو وقتی خونده باشه، و اشکال مختلف فائل رو باهاش آشنا شده باشه، میگیم خب حال شما یه فائل بگو که اسم ظاهر باشه مثلا طرف میگه که نصر زیدون یا وحب زیدون میگیم یه فائل بگو که زمیر بارز باشه مثلا میگه نصر تو میگیم زمیر مستطر باشه میگه که زیدون نصره ساختارهای مختلف رو فائلی بگو که بین او و فعلش فاصله افتاده باشه مثلا نصر فدار زیدان بعد یه مقداری که طرف پیشرفت بکنه بیشتر میگیم خب حالا فاعلی بگو که با فعلش مطابقت بکنه فائلی بگو که با فعلش مطابقت نکنه بحث تذکیر و تنیس مطرح میشه کجاها حتما اگر فائل معنص بود فعل معنص میاد کجاها میتونه فعل با وجود فائل مذکر معنص بیاد یا برعکس اینا رو طرف دقت میکنه و بعد حالات مختلف فائل در ذهنش ترسیم میشه فائل هایی که جمع معنص باشه خایل که اسم جمع مثلا باشه این بس رو وقتی با بحث تعدد شاهد زمینه بکنیم و تو تعدد شاهد ممکنه طرف با قالا نصوتون فی المدینه مواجه شده باشه قال نصوتون فی المدینه امرعت العزیز تو را به دو فتاها ان نفسه با اینکه که معنسند، معنس حقیقی هم هستند، اما فعلش به صورت مزکر اومده، خب اون حساسیت رو ایجاد میکنه که ممکنه فائل معنس حقیقی هم باشه، اما فعل به صورت معنس به کار بره، بعد توی ساختن مثال هم، خودش که میخواد مثال سازی بکنه، بعد اون نکات مد به نظرش میاد. باز، مبتدا و خبر با اشکال مختلفی که داره بعد میگیم برای خبر جمله مثال بزن مثلا میگه زیدون نسره میگیم خب خبری مثال بزن که جمله اسمیه باشه این یه کمی ممکنه سختر باشه مثال سازی ممکنه طرف تو زهنش یه مقدار پایین بالا بکنه بعد فرض بکنیم بگه که زیدون ظاهبون ابوه و تا که این مثال رو زد میگیم واقعا زیدون ظاهبون ابوه این الان مثال شد برای خبر جمله دقت که طرف میکنه میگیم خب ترکیبش بکن میگه زیدون مبتدا بعد ظاهبون خبرش و ابو فائل ظاهبون این هم شد وصف و فائل میریم وصف و فائل که جمله نمیشه جمله باید فیل و فائل یا فیل و نایف فائل باشه یا مبتدا و خبر ما نداشتیم که وصف و فائل بشه جمله که فقط توی وصف مبتده وصفی داشتیم که اونو مرس کردیم یک مثال قرآنی نداره مثال واقعی و متعین ند بکنیم مثال متعین فاصله نگید که مثلا بعضی از مثال هایی رو که کلیشه هم هست و بعد اراغبان انتان آلهتی یا ابراهیم اون مثال متعین نیست اون راغبان درش میتونه مقتده خبر مقدم باشه تا مقتده مرخل هیچ مشکلی هم نداره مثال متعین نداره لذا طرف میگه وس وس با فائل میگه وس با فائل که جمله نمیشه این میشه از اقسام خبر مشتق خبر مفرد مشتق که فائلش اسم ظاهره ولی حالا اگر همین زیدون ظاهبون ابوهو رو بگه زیدون ابوهو ظاهب ابوهو ظاهب که شد بعد این میشه جمله اسمیه زید مبتدا ابو مبتدای دومه این ظاهبون خبر ابو و بعد ابوه و میشه خبر زید یا مثلا میگیم حال مثال بزن حال برای فائل میگه که جا زیدون راکبند میگیم حال برای مفعول مثال بزن میگه نصر تو زیدن راکبند میگیم خب حالا من از کجا بدونم که این راکبند حال برای مفعوله این راکبند ممکنم حال برای تو باشه یعنی من در حال سواره و رویاری کردم. یه مثالی ذکر بکن که این معلوم باشه که حال برون مفعوله. بعد طرف مجبور از ظرفیت ها استفاده بکنه. همونی که درس کردیم در آینده بیشتر توضیح میدیم. بعد فکر میکنه خب من چه بکنم که این حتما حال برون مفعول بشه میاد از ظرفیت جمله استفاده میکنه. میگه نصر تو زیدن و هوه راکب وقتی گفت و هوه راکب این و هوه راکب جمله میشه و قطعا حال برای زید میشه ولی اگر میگم نصر تو زیدن و انا راکب خب این میشد قطعا حال برای فائد یا میاد از ظرفیت تنیست استفاده میکنه میگه نصر تو هندن راکبتن و وقتی راکبتن شد دیگه معلوم است که حال برای هنده که هند موننسه و حال و زلحان باید در تصفیر و مطابقت بکنند لذا این قطعا حال برای مفعول خواهد بود یا میاد از ظرفیت تصنی و جمع استفاده میکنه میگه نصر تو راک راکبین من دوتا زید رو یاری کردم در حالی که اونها سواره بودند یه راکبین چون تسنیه است قطعا حاله برای زیدن خواهد بود و معنا نداره که و امکان نداره حاله برای فائل باشه این با ظرفیت ها آشنا میشه که چی شده که این ظرفیت های مختلف اصلا پیدا شده بعض وقتا تو گویش حرف برای اینکه مقصودش روشن باشه، ناچار که از ظرفیت جمله استفاده بکنه. این در نمیتونه حال رو به صورت مفرد بیاره چون توهم خلاف میشه. یا میگیم که حالی مثال بزن، حال خودت حالی مثال بزن که جمله باشه، نمیدونم جمله اسمیه، جمله فعلیه. حال برای فائل، حال برای مفعول، حالی که جامد باشه و صفت برش رو آورده باشیم، های مختلف حال رو طرف روش فکر میکنه و مثال برش میسازه. این ساختن مثال خیلی کمک میکنه. تو این قسمت اگر انسان یه رفیقی داشته باشه که دو نفری با هم این بحث رو دنبال بکنن، نتیجه بخشتر خواهد بود. و اگر اون رفیقش یه مقدار مسلط از خودش باشه که بتونه اشکالات رو تذکر بده احیانا اگر تطالب صورت نگرفته اگر مزکر و بودنش تصنی و جمع بودنش اینها رو آیت نشده اینها رو گوشتد بکنه و مثالها رو دقیقش بکنه این زودتر به نتیجه میرسه این هم دومین را برای تسلط بر ادبیات سومین راه تجزیه و ترکیب مستمره تجزیه خودش دوره کردن مباحث صرفی و ترکیب دوره کردن مباحث نحوی طلبه ای که مشغول صرف و نحوه یا طلبه ای که این مراحل رو گذرونده اگر بخواد ببینه که روحیه ادبی در شکل گرفته یا نه باید ببینه برخوردش با کلمات با عبارات عباراتی که در ادعیه باش مواجه میشه در احادیث مواجه میشه یا اینکه با آیات قرآن مواجه میشه کلمات یهیانا میشنوه باید ببینه که در برخورد با اینها چقدر روحیه حساسی داره کسی که روحیه ادبی داره در برخورد با کلمات خیلی برش مهمه که این کلمه چرا ساختارش اینجوریه این کلمه معناش چیه این عبارت به این شکلی که بیان شده نقش ترکیبی کلماتش چگونه خواهد بود ممکنه یک تابلوی رو ببینه ممکنه کاشکاری یک مسجد یا مدرسه رو ببینه این حساس میشه این که نگیم تضیح و ترکیب مستمر یعنی یک روحیه‌ای در خودش ایجاد بکنه در برخورد با کلمات عربی و در برخورد با جملات عربی هر جای که هست که حساسیت داشته باشه نسبت به ساختار کلمات، معانی کلمات و نقش ترکیبی کلمات خب یه تذیع و ترکیب معمولی که داشته باشه از یه جای قرآن شروع بکنه که قرآن از این جهت که کتاب‌های راب القرآن متعدد نوشته شده و بعد انسان میتونه مطالب خودش رو ارزیابی بکنه خیلی مناسبه اونتا تذیع و ترکیب رو با جز سیام شروع نکنه چون اونجا حسفش زیاده نسبتند و یه مدار ترکیبات مشکلی داره پرز بکنیم سوره مبارکه جمعه سوره مبارکه هش سوره مبارکه منافقون سوره های اینجوری که یه مدار ترکیبش آسان تجزیهش تذیعش راحت اینا رو انتخاب بکنه به صورت ترتیبی آیات رو تجزیه و ترکیب بکنه و معانی لغاتش رو دنبال بکنه غیر از اون در برخورده با موارد متعدد جاهای مختلف که برخورد میکنه تلاش بکنه که حساس بشه نسبت به ساختار کلمات معانی و نقش تلکیبی اونها چند نمونه رو به عنوان مثال ارس میکنم که ببینید ما چقدر راحت از کنار بعض از عبارات میگذریم و احیانا اون عبارت رو غلط بیان میکنین یا دقت نمیکنین در جایگاه کلمات و معانی کلماتش فرز بکنید کسی میره در حرم حضرت معصومه علیه السلام طلبه فازلی هم هست بعد میبینید که مشغول خوندن زیارتنامه هست همینجور که داره میخونه میگه نسل و به ظالی که وجه که یا اللهم و رضاک و دار الاخره نوع ظاهران که میان همینجور میخونند این طلبه فاضل هم میاد و بعد به همین کیفیت میخوند بعد یک لحظه او رو متوقف کنید به خب شمای که اینجا وقت کردی نهقد به زارال کشه که یا سیدی بعد میگه اللهم موارددا که و دارل آخره این واردضااک بر چیه به خصوص اگر عبارت را از همین جا شروع کنید اللهم موردار که و دارل آخره که معمولا تو حرم می شنوید مردم اینجا وقت میکنن و با همین اللهم دوباره شروع میکنن. بگی این ورزاکه عطب بچیه ممکنه به تکلف بیفته شروع کنه یه محضوفی رو برش پیدا کردن در نظر گرفتن ولی اگر کمی دقت بکنه خب عبارت به این صورت نطلب و به ذالکه وجه کرد یا سید لاهم و ورزاکه و دار و وقف کردن رو عطب... یا سیدی جا نداره یا سیدی و الله و من جمله معترضه است جمله نداریه است جمله معترضه است بین معتوف و معتوفون علیه فاصله شده که متعدد داریم مواردی که یه اینجوری مثل اللهم بین دو چیزی که با هم ارتباط وسیق دارن فاصله میشه مثل که و کنه, کنه اللهم به دم اولادها توی سلوات بر حضرت زهر علیه السلام داریم و کنه سائر اللهم به دم اولادها اونجا به دم متعلق است به اون سائر اللهم جمله معترضه اینجا واسطه شده در همین زیارت حضرت معصومه علیه السلام هم نطلب و به که وجه که یا سید الله و که و دار الاخره من طلب میکنم به واسه این وجه تو را ای آقای من ای خدا و رضای تو را و خانه آخرت را نطلب و به که وجه که و که و دار الاخره این یا سید اللهم هم اینجا جمله معترضه است جمله معترضه اینجا فاصله شده خب این رو طرف به بکنه که بعد لحن زیارتنا به خوندنش هم درست بشه یا مثلا توی دعای کومید برخود میکنی میبینی که آخر دعا طرف میگه و آله المیامین نه و سلمت اسلیما میگه میامین نه یه خب ممکن اصلا دقت نکرده بعد که توجه میدی میگی میامین نه یا میامین نه طرف میگه که جمع مزکره دیگه میامین نه میگیم یک دقت بکن این جمع مفردش اصلا جمع مزکره بعد یه دار دقت میکنه میبینه مفردش میمونه. و میامین جمع میمونه و میمون یعنی مبارک و این نون نونه جمع نیست و جزء ای کلمه است ریشش یمنه و این کلمه هم جمع مکسره لذا و آله نه و سلم تسلیمه یا مثال روشندتری رو از بکنم این عبارتی رو که در خطاب به آقای امام زمان علیه السلام مخاطب از زبانشون جاری میکنن میگن یا ابا صالح المهدی ادرکنی خب افراد معمولی به همین صورت میگن بعد میبینی یه طلبه یه طلبه فاضلی هم میگه یا ابا صالح المهدی ادرکنی بعد یه لحظه دستش رو می‌گیری میگید چرا به این له گفت میگه مگه چی میگین یا ابا صالح المهدی ادرکنی ایک به فکر وا میره به فکر وا داشته میشه که خب یا عبا صالح چرا من با فتح خوندم صالح رو بعد میگه یا عبا صالح هل مهدی خب عبا به صالح اضافه شده یا عبا صالح هل مهدی ادرکی بعد میگه بازم بیشتر دقت کن ممکنه هرشی هم دقت بکنه نتونه جواب شما رو بده چون موارد ما برخورد دی کردم همین جوری که اصلا ذهنش حساس نشده که آخه چرا یا با ساله حل مهدی بعد وقتی توجه میدی میگی خب این ساله اولا که مزافون لیهه بعد چرا شما به این ساله تنوین نمیدی اگر مزافون لیهه پس مشروره اگر بخواد تمرین تنوین نگیره یا باید مبنی باشه یا باید غیر منصرف باشه یا باید مضاف باشه یا علف و لام داشته باشه کلمه که یکی از این چهار حالت رو داشته باشه تنوین نمی گیره. خب اینجا سالح کدوم یکی از این چهار حالت رو داره میگه خب اضافه شده به المهدی این خب عواسالح که خودش کنیه از کنیه یکی از اعلام بود و من عطا و کنیتن و لقبا دی کنیه که خودش اضافه نمیشه که بعد که میکنه میبینه خب باید بگه یا ابا صالح الن مهدین ادراکنی ممکن است شما بگید آقا اونجا طرف فقط فکرش توجه به امام زمانه و دیگه توی این مباحث لفظی نیست ما میگیم منافت نداره. اصلا تو ادبیات ما توی اون جلسه اول عرض کردیم. تو ادبیات باید مهارت اعراب به گونه ای حاصل بشه. که مثل راننده ای که فکرش تو رانندگی ولیکن ولی کن حالا که فکرش تو رانندگی است اینجور نیست که دنده و کلاج و ترموز و اینها رو درست عوض نکنه درست نگیره درست رحال نکنه که فکرش تو رانندگی است ولی کن دقیق دنده عوض میکنه، کنه به کلاج می گیره به جا ترمز می گیره همه اینها بدون اینکه توجه تفصیلی بهش پیدا بکنه صحیح انجام میشه. شه طلبه هم باید بدون اینکه توجه تفصیلی پیدا بکنه اون عبارات رو صحیح بگه مواردی از این دست ممکنی کم نباشه انسان باید تلاش بکنه این روحیه رو در خودش تقویت بکنه تا بعد عبارات رو غلط نگیره اگه عبارات غلط گفته بشه اون مخاطب ما اعتماد نمیکنه. حتی اونجایی که غلط در معنا گذار نیست اون مخاطب اعتماد نمیکنه. اگر مخاطب خاص باشه مخاطب خاص میگه خب چرا اینجوری خون معلوم میشه که پس دقت آنچنانی نداره نمیشه روی مطالبش خیلی حساب باز کرد مثال دیگری که میتونه الان مطرح میشه مثل اینکه در دعای توسط مواجه میشیم با یا فاطمه تز زهرا یا یا فاطمه توز زهرا آیا اونجا بگیم یا فاطمه تز زهرا یا یا فاطمه توز زهرا او. خب انسان بعد به برکت مباحث ادبی که خونده بتونه هر دوهش رو توجیح بکنه و تبیین بکنه که بعد فاطمه میتونه منادای مفرد معرفه باشه و از زهرا هم صفتش باشه قهرن میشه یا فاطمه تو زهرا او از باب اینکه که منادای مفرد معرفه مبنی بر زمه از زهرا هم که صفتش هست تبعیت از لفظش کرده اعراب رفع گرفته رفعش به همون زمنه چون الفلام داره یا فاطمه الزهراء او میتونم یا فاطمه باشه از باب اینکه و این یکو نام مفردینه فعز حتما و اللا اعط به علت براساس نظر بسویون تو سویتی اینجور متح شده که اگر اسم و لقب کنار هم قرار گرفتند و مفرد بودند شما حتما یکی رو به دیگری اضافه بکن همون اولی رو به دومیم، اسم رو به لقب مثلا از زهرا خودش میتونه علم باشه و لقب باشه برای حضرت زهرا علیه السلام برای حضرت فاطمه سلام. السلام لذا فاطمه خودش علمه از زهرا هم میتونه لقب حضرت باشه حفظ علم رو داشته باشه که علف علام و زینت گرفته یا با علف علام علم شده وقتی اینجور شد بعد این دوتا علم کنار هم قرار گرفتن براساس نظر بسریون اضافه شدن اولی به دومی واجبه و این یک اونا مفرده حتما حتما اضافه بکن اضافه میکنه. بر اساس نظر کوفیون میتونه اضافه بشه میتونه نشه بهتر که اضافه بشه لذای آفاتمت از زهرائه هم وش داره قابل تبیینه. این رو بر اساس همون چیزی که انسان توی سویته خونده میتونه تبیینش بکنه، توضیح بده یا بر اساس اون چیزی که تو بدایع خونده یا یا محمد بن علیه یا محمد بن علی. و نحو زیدن و فتهن نحوه از زید بن سعیدن لاتهن. خب انسان میتونه بر اساس همون شعر وجهی رو که در این عبارت دعای توسل تصور میشه تبییم بکنه. خب این بحث دامنه داره موارد دیگری رو هم میشه مثال زد منظور این بود که این روحیه در انسان پیدا بشه و تزدیه و ترکیب باعث بشه که انسان دقت پیدا بکنه هم در صحیح خواندن و هم در ارزیابی معنا که قبلا گفته بودیم ها در رابطه با تذیه خوبه که این بحث رو هم بگیم گرچه اینجا ما بحث تذیه رو نمی مفصل مطرح بکنیم اما این بحث فکر میکنم بحث لازمی باشه که دوستانی که این رو دنبال میکنن توجه داشته باشن در تذیه اسم فعل و حرف ما اگر این نکاتی رو که عرض میکنیم توجه پیدا بکنیم کافیه به خصوص در اسمهای معرب مثلا ما به این هشت نکته یا هفت نکته توجه پیدا بکنیم وقتی با یه اسمی برخورد میکنیم اول تشریص بدیم این اسم. اسم بودنش رو تذکر بدیم قال علی یون علیه السلام علی اسم است اسم بودنش رو توجه بدیم بعد مفرده یا تصنیه یا جمع بعد مزایک یا مؤننث جامد یا مشتق اگر جامد مستر یا غیر مستر این رو تو برانتز مشخص میکنیم اگر مشتق کدامیک از مشتقات اسم فاعل اسم مفعول صفت مشابه مبالغه است، اسم تفصیل اسم مکان اسم زمان چیه این رو هم مشخص میکنیم بعد این اسم معرفه است یا نکره، اگر معرفه است کدام ایک از اون معرف ششتانه است تو پرانتز مشخص میکنیم، در وحلی بعد معربه یا مبنی است، خب اگر مبنی باشه که هیچی، اگه معربه، منصرف یا غیر منصرفه، این نکاتی است که حتما در اسم توجه بهش پیدا بکنیم. اما اینکه این اسم متصرفه یا غیر متصرفه این یک مسئله پر پرحزینه کم فایده است متصرفه یعنی این اسم متصنیه و جمع و مسققر داره یا نداره و منصوب حالا داشته باشه یا نداشته باشه چه مشکلی رو ایجاد میکنه یا حل میکنه هیچی حزینهش زیاده فهمش یه دشواره دوشواره ولی کم فایدهی هم نداره لذا متصرف و غیر متصرفه رو خیلی نمیخواد دنبال بکنیم، همون هفت مطلب دیگر رو دنبال بکنیم. اون هشت مطلب دیگر. تو تجزیه فعل، نوع فعل رو تذکر بدیم. سعی کنیم این ترتیبی رو هم که ارز کردم حتماً مدد نظر قرار داد بدیم که در ذهنمون یک ساختار ثابتی پیدا بشه. در تحضیه فعل اول نوع فعل رو تذکر بدیم این فعل ماضیه یا مزارعه یا امره بعد سیغه فعل رو مثلا مفرد مزکر مقایب بناء فعل سلاسیس یا روبائی مجرد یا مزیده بعد باب فل مثلا سلاسی مجرد باب نسره باب نسره یعنی مازیش بروزن فعل است مزارش یفقلو یا باب ضربه یعنی مازیش بروزن فعله مزارش بروزن یفقلو باب های سلاسی مجرد معمولا یه مثال معروفی دارن میگیم باب علمه، باب شروفه، اینها باب نسره، باب ضربه که ارز کردم این ابواب هر کدومش یه مثال معروفی دارن بر اساس همون مثالش رزاوت میکنیم بعد این سالم یا غیر سالمه این فعل مثلا سالم یا مثال یا اجرف یا ناقصه یا لفیفه این رو مشخص میکنیم بعد لازمه یا متعدیه معلومه یا مجهول معرب یا مبنی است اینا است که ما در افعال باید بهش توجه بکنیم باز اینکه این فعل متصرفه یا غیر متصرف این مهم نیست متصرف در فعل یعنی اینکه که مازی داره با همه سیقه ها داره با همه سیقه های چارده داره با همه سیقه های خب حالا داشته باشی یا نداشته باشی چه مشکلی را حل میکنه یا ایجاد میکنه اون خیلی مهم نیست به اگر میدونیم ذکر میکنیم نه متصرف یا غیر متصرف بودن خیلی اهمیت نداره بعد می آیم سراغ اول نوع حرف رو ذکر میکنیم مثلا این حرف عطفه یا حرف جره یا حرف مشبهتون بالفعل بعد اصل مبنی بودن رو اشاره میکنیم که تا توجه بدیم که حتما حروف مبنی هم. این مبنی بودن یه قید توضیحیست برای حرف این رو ذکر میکنیم بعد آیا این حرف جز حروف آمله یا غیر آمله مثلا حرف جر حرف مشبهتون بالفعل میشه عامل یا حرف عطفه یا حرف تنبیه یا حرف تنفیسه اون میشه حرف غیر عامل. این مهمه که این سه نکته رو ما ذکر بکنیم حالا این مشترک یا مختص آیا مشترک هم بر سر اسم در میاد هم بر سر فعل یا مختص به اسم یا مختص به فعل این خیلی اهمیت نداره تو تجزیه حرف هم ما این نکات رو در نظر بگیریم در واب تجزیه همین تو واب ترکیب هم در ترکیب کلمات اون نقشی نقش ترکیبی حساب میشه که اعراب خاصش رو به همراهش داره مثلا شما نمیتونید بگید این کلمه مضاف، مزاف بودن نقش ترکیبی نیست چون اعراب خاص نداره یا بگید این مخصوص، مخصوص بودن خودش نقش ترکیبی نیست اعراب خاص نداره. باید بره زیر مجموعه یکی از اناوین دیگه قرار بگیره. مثلا رزا مثلا وقتی میگید نعمر رجل و زیدون. زید درسته که مخصوصه به مدفعه. اما این نقش ترکیبیش نیست. شما مجبوری بگید زید مقتدای معخره. نعمر رجل خبر مقدم. یا زید خبر است برای مقتدای محضوف. باید تحت یک عنوانی قرار بدید که اون عنوان اعراب خاص داره. موصوف بودن یا مزاف بودن یا مخصوص بودن اینها انوانی نیست که اعراب خاص داشته باشه اما اون عناوین فائل نائب فاعل مبتدا خبر مفاعل خمسه حال تمیز اینها عناوینی هستند که اعراب خاص دارند توابع هم همینجور وقتی میگید که مثلا صفت خب صفت برات چیه صفت برای هر چی که شد اعراب همون رو خواهد داشت لذات حوابه هم از اون جهت که اعراب مفعول رو می گیرن اینها نقش حساب میشن این هم تکمله ای که در باب و ترکیب به نظر رسید که عرض بکنیم حالا یه جایی هم هست که این بی‌دقتی تو معنا هم گذاره پس این راهکار رو هم باید جدی بگیریم تضیح و ترکیب مستمر تا بعد اگر تو اهداف زی کردیم یکی از اهداف اینه که انسان توان تضیح و ترکیب عبارات رو به صورت های مختلف داشته باشه برای فهم عبارت و معنا و برای دقت بخشی اون توان ایجاد بشه و حاصل بشه در ادامه مباحث مربوط به راه های تسلط بر ادبیات عربی چهارمین راهی که میشه بیان کرد مراجعه به متون متعدد و متنوع یعنی علاوه بر این که انسان بعد از خوندن درس براش شواهد متعدد پیدا میکنه علاوه بر این که خودش مثال می سازه علاوه بر این که به تزیع و ترکیب اهمیت میده که این سراح قبلی بود مطرح شد، به متون متعدد و متنوع هم مراجعه میکنه. به عبارت دیگه کسی که عدویات عربی رو میخانه و یک طلبه نباید از کتابهای عربی بترسه. چون ادبیاتی که میخونه ادبیات عدبیات متونه ما ادبیات مکالمه که نمیخونیم نظام بعد از دو سه سال عربی خوندن ممکنه توان تکلم نداشته باشیم چون توقع هم نبوده که ما با خوندن این کتاب ها بتونیم مکالمه بکنیم حتی توان نگارش ممکنه نداشته باشیم باز توقع نبوده که ما با این کتاب ها توان نگارش پیدا بکنیم. اما توقع بوده که با خوندن این کتاب های مرسول ما توان خواندن متون و درک متون رو داشته باشیم. حالا متون که از میکنیم علاوه بر قرآن کریم متون حدیثی کتاب های تفسیری کتاب های فقهی کلامی ادبی، اینها همه همه است که ما باید بهش مراجعه بکنیم. مثلا طلبه تل... بعد از این که یک سال گذشت اجمالاً با ادبیات آشنا شد نه ترس از این که به کتاب اصول کافی مراجعه بکنه شب شهادت امام یا تولد امام علیه السلام حفول اقول رو ببینه روایات حضرت رو ببینه به مجمع مراجعه بکنه به المیزان مراجعه بکنه به الخدیر مراجعه بکنه تحریر وسیله از تمام رو بخونه تو و احکام یا عربت الوسقار رو یا الکتاب سیبه وحی رو کتاب هایی که شرح عربی برا همین کتاب های مرسوم حوزه است شروحی که به صورت عربی نوشته شده اینها رو از این که بهش مراجعه بکنه از استفاده بکنه نترسه این جرعت رو داشته باشه و بعد حتما مراجعه بکنه همون اوائل رساله عربی مرجع خودش رو بگیره و مطالعه بکنه این متون وقتی متعدد شد متن حدیثی متن تفسیری فقهی کلامی ادبی و متنوع وقتی متعدد و متنوع شد انسان با این مراجعات برکات زیادی نصیبش میشه یکی از برکاتش اینه که توی این مراجعات گنجینه لغویش افزایش پیدا میکنه بهرن وقتی که به متنی مراجعه کرد متن یه لغاتی داره متن اصولی لغاتی داره متون تفسیری لغات خاص خودشون رو دارن متون حدیثی لغات خاص خودشون رو دارن کم کم طرف به واسطه این مراجعات که میکنه به بفهمه با واجه های متعددی آشنا میشه و این گنجینه لغویش افزایش پیدا کنه. این یکی از فواید و برکاتشه یکی از فواید و برکاتش اینه که کم کم مهارت صحیح خواندن، روان خواندن و درک مطلب درش تقویت میشه خود صحیح خواندن و روان خواندن یک مهارت وقتی که میگیم مهارت یعنی سه چیز درش باید باشه. تو مهارت، سهولت، سرعت و دقت مطرحه. میگید یه ای ماهره یعنی به راحتی رانندگی میکنه. با سرعت کارش رو انجام میده. دقتش هم کم نمیشه. این سرعت باعث نمیشه که دقتش کم بشه. راحت. ممکنه مشغول حرف زدن هم باشه، ممکنه یک کار دیگری هم انجام بده، اما داره رانندگیش رو میکنه و این توجه باعث کم دقتی در رانندگیش هم نمیشه. یا تایپیست رو در نظر بگیرید، وقتی مهارت تایپ پیدا کرده، یک صفحه رو هم خیلی راحت تایپ میکنه، سهولت در کارش هست، هم. هم سریع تایپ میکنه، هم این سهولت و سرعت باعث نمیشه که دقت کم بشه. ممکنه ماهای که مهارت نداریم، بخواییم تک انگشتی این صفحه رو تایپ بکنیم. هم کند کارمون پیش میره، هم اون دقت او رو نداره، و هم با سختی پیش میره. پس ما مهارت تایپ نداریم. یا کسی که میخواد سخنرانی بکنه، مهارت سخنرانی کردن، راحت سخنرانی میکنه بعد سریع کلماتش رو پشت سر هم میاره این سهولت و سرعت دقتش رو هم کم نمیکنه این میشه مهارت خب این مهارت رو باید کسب کرد تو یاد. با مراجعه به متون متعدد و متنوع این مهارت کم کم حاصل میشه به خصوص که اگر ما دو نفر باشیم سه نفر باشیم و متن خوانی بکنیم یعنی طرف مقابل بنشینه من متن رو برش بخونم و او با نهایت دقت و سخت گیری حتی روی حرکاتی کلمات مثلا اگر کلمه تکرار رو من گفتم تکرار او به هم تذکر بده یعنی اینجوری بشه که خیلی هم بهتره یه حتی یه غلط های مشهوری که در اون حد از شهرت نیست که دیگه رواج پیدا کرده باشه و بعد مسامهه صد درصد درش پذیرفته باشه. نه یک است که توقع هست که یک طلبه یا یک عالم دینی صحیح بیان بکنه. مثلا ثبات و ثبات. دیدید که حتی خیلی از افراد، افراد سرشناس میگن ثبات قدم. در حالی که ثبات، خب غلط ثبات قدم درسته. انسان حتی این دقت رو هم بکنه یعنی رو ضبط کلمات کم کم ضبط کلمات کم بالا بره اگر دو نفر بشن یعنی یه نفر باشه که های انسان رو بگه و کم کم ساعت بگیره که شما سه ست رو 400 رو تو چند ثانیه یا تو چند دقیقه میخوانی که <تصفح> کم کم سرعت انسان هم بالا بره این هم یک فایده است یک فایده است که حاصل میشه که مهارت مهارت صحیح خواندن انسان پیدا میکنه مهارت روان خواندن پیدا میکنه و یعنی با سرعت و به آسانی و در این حال با دقت متن رو میخونه بدون اینکه این, این دقت در صحیح خواندن مانع از فهم عبارات بشه این به برکت همین مراجعه به متون و معتم خانی اتفاق می افته. برکت هم فایده سومش هم اینه که توان استثار و فهم مرادات رو بالا می بره ما بلاخره باید این متون رو بفهمیم ما هرچه که مراجعاتمون به آیات قرآن به روایات محسومین علیهم السلام بیشتر باشه و اینها رو بیشتر بخونیم بیشتر تو فضای فرمایشات اون بزرگواران قرار می گیریم. خود به خود فهم کلماتشون برای ما راحتتر میشه. شما اگر یک سخنرانی رو اول بار باشه که پای منبرش می نشینید خودتون رو بکنید با یک کسی که سخت سخنرانی قبلا از این سخنران گوش کرده. حالا با هم که پای این سخنرانی نشستید ممکنه یه قسمت های رو اون شخص بگه منظور این آقا این بود این بود توضیح بده بعد شما میگید که انگار از ظاهر کلماتش که این فهمیده نمیشد میگه نه ایشون وقتی این مطلب رو میگه منظورش اینه خب این رو از کجا میگه واسه کسرت مراوده واسه اینکه خیلی صحبت های او رو شنیده اگر انسان مراجعه بکنه به مرتب به متون فقهی به متون اصولی، به متون تفسیری، به متون حدیثی، هرچی که احادیث بیشتری رو مراجعه بکنه، غیر از اون برکات قبلی، این مراجعات باعث میشه که درکش بالا داره یعنی تو فضای فکری و تو فضای گفتاری معصومین علیهم السلام قرار بگیره. وقتی تو فضا قرار گرفت، راحتتر کلامشون رو میفهمه. این، نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره. پس ما در کنار خوندن اون دروس مرسوم همون کتاب های رائج حضوی، حتما به این امور هم بها بدیم. اگر این چهار امری که ارز کردم بیاد در کنار همین دروس رائج خرار بگیره. اون اهداف پنجگانهی هم که گفته شد مد نظر باشه. یعنی تلاش ما این باشه که متون رو صحیح بخوانیم، روان بخونیم، بفهمیم و بتونیم با تجزیه و ترکیب فهممون رو دقت ببخشیم یا ارزیابی بکنیم و ظرافت و دقایق لفظی و معنوی رو هم متوجه بشیم. اون اهداف در نظر گرفته بشه، این راهکارها دنبال بشه، ان به نتیجه میرسه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم. توجه به اون اهداف و این ها باعث میشه که احیانا افرادی که میگن ما ادبیات رو ضعیف خوندیم یا خوب نخوندیم وقتی گفته میشه خوب خوندیم یا خوب نخوندیم خوب خواندن یا خوب نخوندن رو با همین معیارها میتونیم ارزیابی بکنیم یعنی خودمون ببینیم این که میگیم ادبیاتمون ضعیفه یعنی چی یعنی عبارت رو نمیتونیم بخونیم یعنی روان نمیخونیم یعنی نمیفهمیم از و ترکیب نمیتونیم بخونیم بعد خودمون رو ارزیابی میکنیم برای یک استاد اون استاد وقتی که دید مشکل ما رو متوجه میشه ممکنه مشکل ما قواعد باشه اما ممکنه استاد وقتی که یه متنی رو ما شروع کرده میخوندن وقتی دید غلط میخوانیم ما رو برگردونه بگه یک بار دیگه بعد وقتی ما رو برگردون و دید که وقتی برگشتیم یه دقتی کردیم صحیح میخوانیم این باعث میشه که متوجه بشه ما توی قواعد مشکلی نداریم لذا این که دوباره یک بار برو صرف و نهر رو این کتاب رو بخوان این توصیه برای ما به درد نمیخوره ما یه مقدار باید با متن کار بکنیم رضا پیشنهادی که او به ما میده اینه که شما یک رفیق پیدا بکن و برای اون متن خانی کن و ازش بخواه که با نهایت دقت و وسواس قلط های شما رو تذکر بده خب این راهکارش اینه یه نفر دیگه میاد میگه من ضعیف نخوندم ضعیف خوندم خوب نخوندم خب دلیله نمیفهمم عبارات رو بعد انسان میگه خب یک نصف صفحهی بخون یه چند صفحه بخون وقتی خون میبینه خوب نخونه یه ولی خب نمیفهمه بعد میبینید که گنجینه لغاتش چیز موجودی نداره این با لغات زیادی آشنا نیست این باید بره کمی رو واجه ها کار بکنه گنجینه لغات خودش رو افزایش بده یا یک کسی عبارت رو میخونه معنا هم میکنه صحیح هم میخونه ولی وقتی یه احتمالی رو برش مطرح می خب این احتمال در عبارت نمیشه این معناه اینجور معناوع کنیم الح اللهله یف عماش ما و یف علوماش و غیر میگیم ترجمه کن میگه ستایش خدایی رو که هر کار که بخواد میکنه هر کار که دیگری بخواد نمیکنه ولا یف علوماش بعد بهش میگیم خب حالا اگر من این ولا یفلوماش و غیرح رو اینجور معنا کردم. و غیر او کاری رو که بخواد انجام نمیده یعنی نمیتونه انجام بده الحمدلله ستایش مخصوص خداست که هر کاری رو میخواد انجام میده و میتونه انجام بده و غیر او هر کاری رو بخواد نمیتونه انجام بده بهش میگم خب این جور اگر من معنا بکنم شما میتونی ردش بکنی یا میتونی به عنوان یک احتمال تصویتش بکنی اینجا ها مردد میشه خب اگر اینجا مردد میشه باید توی بس و ترکیب بیشتر کار بکنه که این عبارت دوتا ترکیب متفاوت میتونه داشته باشه این تا ترکیب هر کدومش یک معنای رو استفاده میکنه اون ترکیب اول معنای رو که اون آقا خودش گفته ترکیب دوم معنای رو که من عنوان احتمال مطرح میکنم بعد خب این دوتا ترکیب کدومش اولویت داره ممکن مراجعهاتی رو بر ترکیب اول یا ترکیب دوم بگه که الان چون دیگه طول میکشه من ترکیباتش فرض نمیکنم خود شما این جمله رو که تو ترکیبات نماز هم هست، تعقیبات نماز و مطالع ظاهرا دقت بکنید خلاصه وقتی اون اهداف در نظر گرفته بشه و این راهکارها خود به خود همون استادی که میخواد ارزیابی بکنه کارش راحت‌تر میشه هم تلاوی که احساس ضعف میکنه میتونه با این اهداف با توجه به این اهداف نقطه ضعف خودش رو بفهمه و با توجه به راهکارها به جبران و ترمیمش بپردازه